و مگر نه این بود که یهود هرگاه پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را دو وفکندند بلکه حقیقت این است که بیشترشان ایمان نمی آورند.